سلام ارز می کنم خدمت شما همراهان کانال هزار افسان. امیدوارم که خوب و خوش باشین. از کتابی که مشخصاتش رو گفتم، داستانی رو بهتون تقدیم می کنم به نام بچهی که از تقب بیرون آمد. روزگاری ملکه ای زندگی می کرد که قلبی اندوهناک داشت چون که فرزندی نداشت. موقعی که پادشاه توی قصر بود اون بسیار غمگین میشد و زمانی که شوهرش از قصر بیرون میرفت، اون تنها میشد و تمام روز گوشه مینشست و گریه می کرد از غذای روزگار بین کشورش با سرزمین همسایه جنگی در گرفت پادشاه راهی میدون جنگ شد و ملکه توی قصر تنها موند اون به قدر غمگین بود که حس میکرد دیوارا میخوان خفش کنند. پس رفت به باغ و زیر سایه درخت لیمو روی چمن قیس کنار جویبار نشست. مدتی به همون حال اونجا موند. بعد میونه علفه صدای خشخشی شنید. به طرف صدا نگاه کرد. پیرزنی رو دید که با چوب زیر بغل لنگ لنگون به سوی جویبار میومد. پس از نوشیدن آب به طرف ملکه رفت و گفت بانوی شریف از اینکه جرأت صحبت با تو رو به خودم دادم عصبانی نشو و فکر بد نکن. از من نترس چون که میخوام شما رو به نیکبختی برسونم. ملکه با تردید نگاش کرد و گفت خودت از سر و رود بدبختی میباره حالا چطور میتونی دیگران رو به نیکبختی برسونی؟ هیر زن گفت می دونی که زیر پوست سفت درخت چوب نرم و هسته شیرین نهفته است. بزار کف دستتو ببینم. من آینده رو پیشگویی می کنم. ملکه دستشو دراز کرد. هیر زن به خطوط کف دست ملکه با دقت نگاه کرد. بعد گفت دو هندوه جانکاه به قلبت سنگینی میکنه قمی کهنه و اندوهی تازه. اندوه تازت به خاطر شوهرته که از تو دور شده و به میدون جنگ رفته. اما خیالت راحت باشه. اون حالش خوبه و به زودی با خبرهای شاد باز میگرده. اما اندوه دیگرد که غمی قدیمی و زندگی نابود کرده نداشتن فرزنده. با شنیدن این سخنان ملکه قرمز شد و سعی کرد که دستشو عقب بکشه. اما پیرزن گفت کمی شکی با باش میخوام با دقت بیشتری نگاه کنم. ملک پرسید: تو کی هستی؟ چطور میتونی رازای نهانی قلبمو بخونی؟ اون جواب داد کاری به نامم نداشته باش اما شاد باش. چون که به من اجازه داده شده راهی پیش پاد بذارم تا از قمهات کاسته بشه. البته باید قول بدی به هرچی میگم دقیقا عمل کنی. شاید نتیجه خوبی بده. ملکه با صدای بلند گفت هرچی بگی مو به مو انجام میدم. اگه به من کمک کنی در ازای اون هرچی بخوای میدم. پیرحسن مدتی به فکر فرو رفت. بعد از لابلای لباسش چیزی در آورد و با باز کردن گریه چند بسته کوچیک سبد کوچیکی رو که از پوست درخت قان درست شده بود، بیرون آورد. اونو به ملکه داد و گفت: توی این سبد تخم مرغیه. باید سه ماه اونو توی جای گرم نگه داری. بعد تبدیل به عروسک میشه. اونا توی سبدی میونه پشم گرم قرار بده و بذار همونجا بمونه. هر چند وقت میبینی که بزرگتر میشه و قد و اندازه نوزاد به خودش میگیره. خلاصه اینطوری صاحبه یه فرزنده دختر میشی. پیرزن به حرفش ادامه داد. به جز ای که از تخب بیرون میاد خودت هم صاحبه فرزنده دیگه ای میشی. یه پسر کوچولو. اونا را هم بذار و بزرگ کن. پس از بازگشت پادشاه از میدون جنگ اونو به دیدن پسر و دخترت ببر. پسرتو خودت بزرگ و تربیت کن. اما دختر کوچولو رو باید به یه ندیمه بدی. وقتی زمان جشن نامگذاری رسید منو هم دعوت کن تا در خونده شاه دخت بشم. اما چطور میتونی منو خبر کنی؟ زیر سبد یه پر قاز پنهان کردم. اونو از پنجره بیرون بنداز، همون موقع نزدت میاد. اما حواستو جمع کن و در مورد این وقایه با هیچ کس حرفی نزن. ملکه میخواست حرفی بزنه که پیرزن لنگلنگان از اون دور شد و هنوز چند قدمی نرفته بود که به یه دختر جوون تبدیل شد و چنان تند دو سریع به راه افتاد که انگار پرواز می کرد. ملکه که این تغییر شکل ناگهانی رو دید، ماتش برده بود و باورش نمیشد. اگه سبد کوچیک و توی دستای خودش نمیدید، تمام این اتفاقا رو رویا میپند پنداشت. اون که احساس میکرد موجود دیگه ای شده و دیگه اون زن اندوهگین بخت برگشتهایی که چندی قبل، توی باغ سرگردون بود نیست شتابان به سوی اتاقش دستش دستشو توی سبد کرد و تخم مرغ رو یافت تخم مرغی کوچک با رنگ آبی ملایم و خالای ریز سبز بود اونو برداشت و در آغوش گرفت و گرن نگه داشت دو هفته پس از این اتفاق پادشاه که به دشمنش پیروز شده بود به قصر بازگشت ملکه برای اینکه معلوم بشه پیرزن حقیقتو گفته تصمیم گرفت تا با آرامش قلبی و امیدوارانه به انتظار بشینه و منتظر بمونه تا پیشگویی پیرزن جامعه حقیقت بپوشه برای اون سبد گوچیک و تخم مرغ با عرضش ترین گنجینه بودن. به دستورش جعبهی طلایی درست کردن و اون سبد رو توی اون قرار داد تا هیچ آسیبی به تخم مرغ نرسه سه ماه گذشت. در طول این مدت ملکه همون گونه که پیرزن گفته بود تخم مرغ هر روز در آغوش می گرفت و گرمش میکرد. بعد اونو توی پارچه پشمی میذاشت تا گرمای کافی به اون برسه و جای نرم و راحتی داشته باشه. ملکه هر روز صبح به سراغ تخم مرغ می رفت. تا یه روز صبح دید پوسته اون دو تیکه شده و عروسک زیبای کوچیکی بین تکه ها خابیده. قلبش از شادی می تپید. عروسک رو به حال خود گذاشت تا بزرگ شد. همونطور که پیرزن گفته بود صبر کرد تا خودش هم صاحب فرزندی شد. با گذشت زمان فرزندش بزرگ شد. بعد هر دو فرزند و، در گهباره ای ساخته شده از سنگهای قیمتی که درخشانی نوازی داشتند گذاشت. سپس به دنبال پادشاه فرستاد تا بیاد پرزنداش رو ببینه. اون با دیدن بچه ها از شادی داشت در می آورد. به زودی روزی رسید که باید برای بچه ها جشن نامگذاری میگرفتند. این موضوع رو به دربان خبر دادند. وقتی همه چیز آماده شد، ملکه به آرومی پنجره رو باز کرد و پر قاز و پرواز داد. مهمونا دست دسته، تند و سری خودشون رو به جشن رسوندن. بعد ناگهان، کالسکی شکوه که شیش اسب شیری رنگ میکشیدن پیدا شد. بانوی جوون که جامعی درخشان همچون خورشید به تن داشت، از کالسکه پیاده شد. چهرش دیده نمی شد چون که روبنده داشت. اما همین که به ملکه نزدیک شد روبنده رو کنار زد. همه با دیدن زیبایی بینظیرش مات و مبهوت مونده بودن. اون دختر کوچیکو در آغوش گرفت و در برابر درباریان بالای سر گرفت و گفت. از این به بعد اون با نام دوترین شناخته میشه. این نامی بود که هیچکس معنیش و نمیدونست، به جز ملکه که میدونست دختر کوچیکش از زرده تخم مرغ زاده شده بود. نام پسر رو هم ویلم گذاشتند. پس از پایان جشن نامگذاری مهمون ها رفتن. بعد مادر خونده بچه رو توی گهواره خوابوند و به ملکه گفت، هر وقت دختر کوچولو تو توی گهواره میذاری، سبت رو هم کنارش بذار و پوسته تخم مرغ رو هم توی سبت قرار بده. تا زمانی که این کار رو انجام بدی، هیچ موجود پریدی سراغشت نمیاد. از این گنجینه مثل تخم چشمت مراقبت کن و به دخترت بیاموز که اونم قدرشو بدونه. پس سه بار دخترک رو بوسید، سوار کالسکه شد و از اونجا رفت. بچه ها به خوبی پرورش یافتند. دایه دوترین به قدری اونو دوست داشت که انگار مادر واقعیش بود. به نظر می رسید که با گذشت زمان دخترک زیباتر می شد. به طوری که همه می گفتند اون از نظر زیبایی مثل مادر خواهد شد. اما کسی به جز دایش نمی دونست که شب هنگام وقتی بچه به خواب می رفت بانوی عجیب و زیبا بر بالین بچه ظاهر میشد. دایه این موضوع با ملکه در میون نهاد و اونا سوگند یاد کردند که اون راز رو بین خودشون نگه دارن. بچه ها تقریبا دو ساله شده بودن که ناگهان ملکه در بستر بیماری افتاد. بهترین پزشکای کشور فرا خونده شدند. ملکه می دونست که مرگش نزدیکه پس دنبال دوترین و دایه که حالا ندیمه دختر شده بود فرستاد ملکه دایه رو وفادارترین خدمت کار می دونست. پس سبد وقت و اقبال رو به دست و از اون خواست که از اون گنجینه همچون جون خودش مراقبت کنه ملکه گفت موقعی که دخترکم ده ساله شد سبد و به اون بسپار، و بهش خوشدار بده که خوشبختی آیندهش در گروه مراقبت از سبده در مورد پسرم خیالم راحت و نگرانی ندارم اون وارث تاج و تخته و پدرش از اون مراقبت میکنه ندیمه قول داد که تموم دستورای ملکه رو به مو انجام بده و مهمتر از همه راز بین خودشونو به کسی بروز نده. بامداد با از راه رسید و ملکه رخ در نقاب خاک کشید. چند سال گذشت. پادشاه همسر دیگه ای گرفت. البته اونو همچون همسر اولش دوست نداشت. پادشاه به علت جاه‌طلبی با اون ازدواج کرده بود. ملکه جدید از فرزندای پادشاه بیزار بود. پادشاه شاه که متوجه این مسئله شده بود، بچه ها را از جلوی چشم نامادری دور کرد. اما اونا همچنان تحت مراقبت دایه پیر بودند. اگه بچه ها اتفاقی سر راه ملک قرار می انگار سگ دیده باشه لگد این اصارشون میکرد. در روز دهمین ده سال تولد دوترین، دایه سبدو که گنجینه دخترک بود به دستش داد و سخنای مادرشو زمانی که در بستر مرگ بود براش نقل کرد. اما دختر هنوز نوجوون بود و درک عرضششونان هدیه ای براش سخت بود و خیلی اونو جدی نگرفت. دو سال دیگه همچون برق جهیدو گذشت. یه روز در زمان نبود پادشاه چشم نامادری به دوترین که زیر درختی نشسته بود افتاد. طبق عادت آتش خشمش زبانه کشید و دختر جوون و سخت کتک زد. دخترک لنگان و نالان به اتاقش رفت. دایه اونجا نبود. در حالی که گریه می کرد، چشمش به جبه طلایی افتاد که سبد گرانبها توی اون گذاشته میشد. با خودش فکر کرد شاید چیزی در اون باشه که سرگرمش کنه. پس با اشتیاق داخلش رو گشت و چیزی به جز یک بسته چوب ریز و نیم پوسته خالی تخم مرغ ندید. با نومیدی بسیار بسته چوب و برداشت و زیرش پر قاز دید. با خودش گفت این اشکال دیگه چیه؟ پس اونو از پنجره بیرون انداخت. همون لحظه بانی زیبا کنارش ظاهر شد. بانو گفت نه ترس. و در حالی که دست نوازش به سر دخترک میکشید ادامه داد من مادر خوندت هستم و به دیدارت اومدم. از چشمای قرمزت پیداست که اندوهگینی میدونم می دونم که نامادرید بسیار نامهربون و بدرفت داره. اما شجاع و شکی باش. روزای بهتری پیش رو داری وقتی خوب بزرگ شدی و نوجوانیو پشت سر گذاشتی اون دیگه نمیتونه به تو آسیبی برسونه در واقع هیچکس قدرت نداره به تو آسیب بزنه فقط حواستو جمع کن و از سبد و دونیم پوسته یه تخم مرغ با دقت مراقبت کن برای سبد یه روکش ابریشمی درست کن و اونو شب و روز همراه داشته باش و از چشم اینو اون پنهان کن. با این کار، از آسیب و بدرفتاری نامادری و دیگران در امان خواهی موند. چنانچه از سر اتفاق، دوچار گرفتاری و درد سر شدی و نمیدونی که چی کار بکنی، پرقاز و از سبد در رو از پنجره به هوا بنداز. همون موقع مثل حالا به کمکت میاد. حالا با من به باغ بیا، تا زیر درختای لیمو با هم سخن بگیم. اونجا کسی حرفامون رو نمیشنوه. اونها حرفای زیادی برای گفتن داشتند. خورشید تازه غروب کرده بود که ما در خوندهش نصیحت‌هاشو تمام کرد. زمان رفتن بود. پس گفت: حالا سبدو به من بده. تو باید غذا بخوری. نباید گرسنه بخوابی. اون روی سبت خم شد و چند کلمه جادویی گفت. فورا میزی پر از میوه و قضا ظاهر شد. پس از خوردن ما در خونده اونو به اتاقش برگردوند و کلمات جادویی و یادش داد تا هر وقت چیزی میخواد اونو به سبت بگی و به خواستش برسه. با گذشت سالها دوترین بزرگ و بالغ شد. حالا برای خودش خانومی شده بود هر کس او با خودش فکر میکرد که جهان تا اون زمان چنان موجود ظریف و دوست داشتنی به خودش ندیده تقریبا همین زمان جنگی در گرفت و پادشاه و سپاهش شکست خوردند و گام به گام عقب نشستند تا مجبور شدن به پای تخت بازگردند دشمن محاصره شهر را آغاز کرد مدت زمانی گذشت و غذا کمیاب بود طوری که حتی توی قصرم چیز زیادی برای خوردن پیدا نمیشد یه روز صبح دوترین که نه صبحانه خورده بود و نه ناهار و خیلی گرسنش بود پر غاز و پرواز داد بلافاصله ما در خوندش ظاهر شد دختر جوان با دیدنش گریه و بیتابی کرد و حرف زیادی نتونست به زبون بیاره مادر خونده گفت، پرزنده دل بندم، گریه نکن، من مشکل تو حل میکنم اما کار بقیه به خودشون مربوطه. بعد به دوترین گفت که همراهش بره. اونا از دروازه شهر را از میونه سپاه دشمن که بیرون شهر اردو زده بودن گذشتند کسی جلوشون رو نگرفت چون که اونا رو نمی روز بعد شهر از پا در اومد و تسلیم شد. پادشاه و همه درباری تسلیم شدن. توی این گیر و دار، پسر پادشاه از فرصت استفاده کرد و فرار کرد. نیزه ای بی اون که پرتاب کنندش هدف خاصی و نشون کرده باشه با خودش مرگ و به سوی ملکه برد. همین که دوترین و مادر خوندش از اون معرکه دور شدند. مادر خونده لباس دخترکی روستایی رو به تن دوترین کرد و برای اینکه زیبایی چهرش به چشم نیاد صورتش مثل صورت دخترای روستایی آرایش کرد. حامیه مهربونش شادمانه گفت اوضا که بهتر شد و دلت خواست مثل اولت بشی فقط کلماتی یا که یادت دادن به زبون بیار. چهرت مثل قبل سیبا و لطیف میشه. اما فعلا باید این وضعو تحمل کنی. سپس با یاداوری هوشداراش برای مواظبت از سبد از اون خدا کرد. چند روز دوترین از جایی به جای دیگه رفت. هنوز سرپناهی پیدا نکرده بود. با گرفتن غذا از سبد گرسنه نمیموند. بعد در خونه یه روستایی خدمتکار شد. و به امید روزای بهتر به زندگی ادامه داد توی خونه روستایی مجبور بود کارای سختی انجام بده اما چون خیلی باهوش بود و همه چیزو زود یاد می گرفت، زیاد سخت نمیگذشت. البته سبدم گاهی پنهانی کمکش میکرد. خلاصه پس از سه روز همه چیزو یاد گرفت و همه کاراشو به خوبی انجام میداد. داد ظرفا رو می و اتاقو جارو می کرد. یه روز صبح که سرگرمه گیراندن آتش زیر دیک بود از قضا بانوید نیک تبار از اونجا می سشت. چهره سپید و زیبای دختر در حالی که زیر دیگه آتیش رو روشن میکرد کرد نظرش رو به خودش جلب کرد. بانو هم اونجا ایستاد و اونو صدا زد و سر صحبت و باز کرد. اون پرسید دوست داری برام کار کنی؟ دوترین پاسخ داد خیلی دلم میخواد البته اگه ارباب فعلیم اجازه بده. بانو گفت: «اجازه رو میگیرم و همین کارو کرد و همون روز به سوی خونه بانو را افتادم. دوترین کنار کالسک ران نشست. شش ماه گذشت. خبرهای شادی به گوش می پسر پادشاه با سپاهی که گردآورده بود بر سپاه دشمن یورش برده. و اونا رو در هم شکسته و تاج و تخت پدر رو از قاصب اون باز ستانده بود. اندکی بعد دوترین با خبر شد که پادشاه پیر در دوران اصارت از این دنیا رخت بربسته. اون در نهان به تلخی گریست چون که در مورد گذشته خود سخنی با بانو نگفته بود. پس از یک سال سوگباری پادشاه جوان دستور داد، همه جا جار بزنند که قصد ازدواج داره و به دستور اون همه دوشیزه های کشور باید توی مهمونی قصد شرکت کنند تا از میانشون همسر آیندش انتخاب کنه. تا چند هفته همه مادرها و همه دخترها سرگرم تهیه و دوخت و دوز زیباترین لباسها و کشف راههای جدید برای پیرایش و آرایش گیسوانشون بودند. بانویی که دوترین توی خونش کار می کرد، سه دختر داشت. اونا هم مثل همه دخترای دیگه سر زوق اومده بودن. دوترین که از هر انگشتش هنر می میبارید تمام روز سرگرم تحییه لباسای زیبا برای دخترای بانو بود. هر شب توی خواب می دید که مادر خونده توی گوشش زمزمه می کرد، لباسای اون سه دختر رو آماده کند. وقتی اونا برای شرکت در جشن به قصد میرن تو هم دنبالشون برو. اونجا گیچ کسی با از تو نخواهد بود. وقتی روز بزرگ جشن رسید دوترین بسیار ناآرام و بیتاب بود. اون پس از اینکه که دخترای دخترهای بانوش رو به تنشون کرد همین که دید اونا همراه مادرشون به قصد رفتن با اندوه بسیار گریه سرداد. بعد احساس کرد صدایی توی گوشه زمزمه میکنه توی توی سبدو بگرد. هرچی لازم داری پیدا می کنی. دوترین منتظر نموند که این حرف دوباره تکرار بشه. از جا پرید، سبدو برداشت و کلمات جادویی و به زبون آورد بیا و ببین. روی تخت لباسی افتاده بود که مثل ستاره ها لباس و پوشید و خودش رو توی آینه دید. اون مبهوت زیبایی خودش شده بود. پایین رفت و جلو در خونه کالسکه ای زیبا دید. سوار شد. کالسک مثل باد پیش تاخت. تا قصر راه درازی بود. تازه به نزدی که دروازه اصلی قصر رسید که ناگهان یادش اومد سود و توی خونه جا گذاشته. حالا چی کار باید میکرد؟ آیا باید برمیگشت و سبد و بر میداشت تا بخت بد به سراغش نیاد؟ یا پا به قصر میذاشت و دلش رو صاف کرد که هیچ اتفاق ناگواری پیش نمیاد؟ پیش از اینکه تصمیم بگیره، پرستوی با سبدی توی منقارش به سوی اون پرواز کرد. لبخند بر لبانه دوشیزه زیبانش و قلب شاروم شد. جشن آغاز شده و مهمونا به نقطه اوج حیجان رسیده بودند. تالار با حضور جوونا و زیبارویان می درخشی. بعد در تالار باز شد و دوترین وارد شد همه دوشیزگان در مقایسه با اون رنگ پریده و زشت بودند. همین که چشمشون به اون افتاد امیدشونو از دست دادند. مادرها زمزم کنان می اون حتما شاه دخت گم شده ماست پادشاه جوان اونو نشناخت و لحظه ای از کنارش دور نشد و چشم از اون بر نگرفت نیمه شب اتفاق عجیبی افتاد ناگهان ابری سنگین تموم تالار رو پوشوند و لحظه فضای اونجا رو تیره و تار ساخت بعد مه قدیس بر طرف و سپس تالار روشن شد. مادر خونده دوترین بالای تالار ایستاده بود. اون رو به پادشاه کرد و گفت این همون دختریه که همیشه فکر کردی خواهرته. اون زمان موعصره‌ی شهر ناپدید شده بود. اون اصلا خواهرت نیست، بلکه دختر پادشاه کشور همسایه است که به مادرت سپرده شده بود تا بزرگش کنه. من باید اونا از دست جادوگری بدکردار نجات میدادم. دادم مادر خونده ناپدید شد و دیگه دیده نشد از سبد شگفتی سازم خبری نبود دیگه تموم گرفتاریای دوترین به پایان رسیده بود و نیازی به سبد نبود اون به همسری پادشاه جوون در اومد و اونا تا پایان عمر